جلال آباد محمد صالح علا زمستان است و شیون کلاخ ها یک سر برف میریزد مزاره نمونه زیر کشت سالبالایی ها یخزده است می نویسم خوشید جان شاید این زمستان قسمت ما بوده اما این یکی را هم مچاله می کنم دکتر ساری با شعف از تأخیر زایمان و پیشگیری از آنتی میگوید. می گوید من زیر سربرگ اداره دامپزشکی می نویسم جناب استاد من معمولیت دارم دو مورد شاربون گزارش شده اجازه میدهید دهید بروم سوزنچی بچه ها دست به دست یاد داشتم را به دکتر ساری می رسانند. او از زیر عینک دنبالم می گردد همین که چشمش به من می افتد. با ابروها به در کلاس اشاره می کند جزوه ها و کتاب هایم را توی کیفم می ریزم و از کلاس خارج می شدم. کلاه بافتنی را روی سرم می کشم تا ایستگاه قزوین راه درازی است پرنده پر نمیزند راهم را کج می کنم. از وسط جاده می رویم کبوتری یکی دومت جلوتر روی برف ها پیاده می روید. من هم پا جای پای او میگذارم. ماشین بوغ میزند و کبوتر پرواز میکند سر میچرخانم ولدزاده است میخندد برفهایم را میتکانم و سوار میشوم همینکه جابجا شدم سر روی شیشه مینیبوس میگذارم و تا اداره میخوابم خواب میبینم شنلی از برف به تن دارم میان اجتماعی از گاوها و خورشید خانم با یک دسته گل آفتابگردان به طرفم میآید میگویم خورشید جان من آسمان نیستم شما مرا به باریدن واداشته اید ولدزاده میزند روی شانم میگوید رسیدیم دلم میخواهد خلاصه خوابهایم را برایش تعریف کنم اداره مهالوده و یخ زده است همه جا شبیه خوابی است که می دیدم پشیمان می شوم و چیزی نمی گویم میپرسد معمولیت داری؟ امروز همه راه بسته است یعقوبی هم دخترش ساییده رفته مرخصی ولی موتورش اینجاست میگویم گویم دو شاربون گذارش شده هر جوری هست باید بروم او می رود من هم از کمدم چکمه ماسک دستکش و عینک بر می بینم در انبار داروی باز است هرچی سوزن و پیستون و سرم و واکسن و ویتافورت و او آر اس هفت, هفت پیدا میکنم توی کیسه میریزم ولدزاده هم موتور رو با چراغ روشن و لب خندان میآورد. روی جک میگذارد میگویم هیچکی نیست به کی رسید بدم میگوید اوزا شیر تو شیره بیا و نرو از سرمایه این طرف ها خبر نداری توی این برف جلالاباد رو پیدا نمیکنی من جای تو بودم تا شب تخمه میشکستم شب قشنگ جا میانداختم تو اتاق رئیس میگرفتم تخ میخوابیدم تو گرگار رو نمیشناسی میشناسی با خودم فکر میکنم این فلسفازاده چقدر حرف میزند حق با دکتر خانجانی انسان بدون رویا پر حرف میشود انگار فکرم را میخواند چون با صدای بلند میخندد و میگوید حتما تو دلت میگی ولدزاده خیلی حرف میزنه نه بالاخره حرف حرف میاره باد برف میخوام دستکشم رو در بیاورم با او دست بدهم که دستم را میگیرد نمیگذارد من هم بغلش میکنم وسایل را ترک موتور میبندم و راه میافتم موتور سواری را دوست دارم عاشق خورشید گاوها و گساله ها هستم با چه اصراری خودم را از اصلاح نباتات به دامپزشکی منتقل کردم رفتم دانشگده کشاورزی کرج فقط به خاطر گاو ها و گساله ها آنها هم مرا دوست دارند از نگاهشان میفهمم هر بار از کنارشان میگذارم ماغ میکشند من هم تلافی میکنم برای هر کدام از یک سوزن استفاده میکنم آن هم سوزن استریل تازه هنگام تزریق با یک دست پوستشان را میکشم تا به بافت‌های عصبی آسیبی نرسد که دارو از پوست و چربی بگذرد و وارد عضله شود. اغلب کنارشان مینشینم، درس میخوانم یا برای خورشید نامه مینویسم. شاید یک روز کتابی بنویسم و در آن ثابت کنم به عکس تصور انسانها، گاف ها گاف نیستند. گاف ها شخصیت پیچیده ای دارند. برخی احساساتی، گوشگیر، خجالتی و فروتنند. برخی ریاست طلب، پرخاشگر و زودرنجند. اندام بزرگی دارند ولی بسیار مهربان، متین و بیازارند. گاوها اغلب بیماری قلبی دارند تنها به خاطر جه بزرگشان نیست به خاطر رنج هایی است که در طول زندگی میکشند از انظر عاطفی پیچیدن، ماده هایشان مادرهای خوبی هستند، نه ماه بار دارند و فرزندشان را تا یک سالگی شیر می و مراقبت می کنند. زندگی می‌آموزانند. هم به ما شیر میدنند و هم به بچه هایشان. برای همین بیشتر گاوها دچار کمبود کلسیم هستند. سینه هایشان ملتهب و متورم است. حافظه خوبی دارند، باهوشند. هرگز برکه ای را که از آن آب نوشیدند یا علفزاری را که در آن علف خوشمزه چریدن و زیر آفتاب مطبوعی چرت زدند فراموش نمی کنند. خوبی را به خاطر دارند. برای از دست رفتن اعضای خانواده خود یا کسانی که با مهربانی و احترام با ایشان رفتار کردند عزاداری میکنند حتی اشک میریزند آنها یکسره نشخار میکنند و من کنارشان می نشینم و می نویسم خوشید جان خورشید جان امان از این بیتو گذشتنها وقتی از شما دورم برف های درونم آغاز می شود کاش میدانستید درباره‌تون چه فکر می کنم. من برای دیدن شما همه درها را زدم؟ عاشقی خوب است. زندگی حلال کسانی که عاشقند من خجالتیم و هنوز نمیدانم اسمتان را چگونه تلفظ کنم؟ ای کاش عشق خود لب و دهان و زبان داشت. جلال آباد کجاست؟ من به کجا میروم روی همه دنیا برف نشسته عالم را مه گرفته عین هو روز اول هستی است این همه برف را فقط در خواب هایم دیدم هیچ جای پای پیدا نیست همه راهها زیر برف پنهان شده دیگر حتی نمیتوانم برگردم باد و بوران و برف به سرعت جای چرخ موتور را پاک میکند آن وقت یادش بخیر، این طرف ها همه گل و سبزی بود، آن طرف ها تا چشم کار می‌کرد، کرد، لاله های سرخ خود رو بود، حالا همه زیر برف مانده، حتی آسمان را گم کردم، صدای موتور عوض می ترمز می‌کنم، می کنم، را بر و از خدا می‌پرسم خدا جان، راه من کدام طرف است؟ راه برگشتی نیست. بی اختیار می لرزم. زوزه های گرگی را می شنبم. ترسیده از آینه موتور خودم را می بینم. با صدای بلند می گویم تو اینجا چه می کنی؟ ولدزاده گفت نرو. گفت در این فصل همه جا پر گرگ گرسنه است. لج نکردم. نگران گاف ها بودم. گاف ها را دوست دارم. گوساله ها را دوست دارم. دام پزشکی میخوانم که دردشان را تشخیص بدهم بیماری را بشناسم هر گاوی که مبتلای جنون میشود و از فرت درد سرش را به دیوار طویله میکوبد گریه هم میگیرد خیال میکنم یکی از عزیزان خودم مبتلای دژنراتیو شده است وقتی تزریق میکنم فکر میکنم به خواهر و برادر خودم سوزن میزنم ولذاده گفت یوسف این زمستان عروسی گرک است باور نکردم گفت آنها این شرایط را دوست دارند هرچه برف و باران و بوران بیشتر بهتر خودشان پالتوی پوست گران قیمتی به تن دارند نه می‌لرزند نه می‌ترسان رؤیاشان دریدن و خوردن است اهلی نمیشوند همین ولذاده می گفت من خودم یک بار گرفتارشان شدم با احترام بسیار گفتم گورکا لطفا بفرمایید مرا بخورید باور نمیکنید باز هم عین وحشیها به من حمله کردند جر و واجرم دادن آنها با اخلاق ای ندارند حتی به ماده خودشان چنگ و دندان نشان میدهند تازه مادههاشان از نرهاشان بیرحمترند گورکا عاشق نمیشوند بچه هایشان را نمی بوسند، بوسیدن را بلد نیستند. پوزه هاشان برای این کار طراحی نشده. هم همدیگر رو در آغوش نمیگیرند، بب هم نمیخورند. حرفهایی ولزاده رو باور نمی‌کنم. از ترس دندان هایم به هم میخورند و در چنین حالی می گویم انسان بدون رویا پر حرف می شود. جلال آباد باید همین نزدیکی باشد. ها بیهوده زوزه نمی کشند دوباره راه بیفتم اما زوزه گرگی را از فاصله نزدیکتر تر می شنوم آشکارا میلرزم یخ زدم حتی عقلم منجمت شده نمی توانم فکر کنم و راهی به نظرم نمی رسد استاد ساری معتقد است سکسانان از آتش می ترسان بی کیفم را باز می کنم جزوه هایم را بیرون می کشم به نظرم جزوه های برای آتش زدن و رماندن گرک ها کم است، پس کتاب های را به اضافه کتاب راهنمای گیاهی حسین گلگلاب کمی دورتر از موتورسیکلت زربدری روی هم می چینم. حالا باید تکه کاغذی رو به بنزین آغشته کنم دلم نمی آید ورقی از جزوه ها و کتاب هایم پاره کنم اوزای خنده است. دست در جیب اوبرکوت می کنم کاغذ شده ای رو بیرون می کشم. پیش از اون که کاغذ رو در باک بنزین موتور فرو کنم کنچکاف می شوم آن را باز می کنم و می خانم. نامه اداری است. خودم نوشتم. جناب دکتر حاجتی ریاست محترم اداره دامپزشکی ناحیه ناهیه یک. به وسیله به عرض می رسانم. شما هم رئیس ما هستید و هم استاد اما نمیدانم چرا برای هر متقاضی از راه رسیده‌ای پروانی راهندازی صادر کنید پیش از آن که حتی احراز صلاحیت شده باشند یا دوره آموزشی بگذرانند یا حداقل برای تأسیس یک نفر تکنسین یعنی ناظر بگمارید. بنده یک ماه پیش از آن آتیش سوزی اصول ساختن فری را شهر دادم آن هم با همه جزئیات چندین بار به ایشان گفتم طویله هایتان باید پشت به باد باشد یا دست کم از باد شکن جهت انحراف بادهای غربی استفاده کنید. حتی طول و عرض کپل به کپل و سر به سر را محاسبه و شکلش را ترسیم نمودم. جدا کردن جای تلیسه از شیری. بنابراین چنان آتش سوزی مهیبی قابل بینی بود. آنها حتی کودها را ذهکشی نکرده بودند. با سهلنگاری جان دهها رست گاو و گوساله را به بازی گرفتند. من خودم هیچ شکایتی ندارم. زیاد داوطلبانه اقدام به نجات جان گاوها ها و گساله ها کردم. تنها ناراحتیم این است که، امسال درس نامزدم تمام می شود و مطابق قرار قبلی باید تابستان به تبریز بروم و حالا میترسم ایشان مرا با این سر و صورت سوخته نشناسد یا بشناسد ولی مایل به ازدواج با این جانب نباشد. خودم می دانم صدمه ای که به من رسیده نسبت به صدمه ای که به گاوها و گساله های عزیز رسیده خنده آور است. این نامه را هم برای شما نوشتم تا پیرو درخواست شفاهی تقاضا کنم گزارش من را که به پیوست تقدیم شده یک بار مطالعه فرمایید شاید گذشته چراغ راه آینده باشد با تقدیم احترامات فائقه یوسف سوزنچی دوباره دیگر نام را میخوانم و بعد آن را لوله کرده در باک بنزین فرو میکنم با خودم می گویم اصلا به رئیس اداره چه مربوط؟ خوشید خانم با من عروسی میکند یا نمی کند. مرا میخواهد یا نمی خواهد اگر من تو امروز به هر آتشی سوختم به خودم مربوط است. حالا هم اگر زنده ماندم و به جلال آباد رسیدم تابستان با قطار به تبریز می روم. در پیاده رو رو به روی در دانشگدهشان منتظر میمانم اگر آمد و مرا شناخ یا لبخندی زد جلو می روم و با او ازدواج می کنم وگرنه حق را به او می دهم بلا فاصله دربست می گیرم بر می و به سراغ روزگارم میرم مدتی کاغذ بنزینی رو روی هوا نگه می‌دارم. هم از گرک ها و هم دل آتش زدن جزوه ها و کتاب ها رو ندارم از اینها ها گذشته اصلا نه کبریت دارم نه فندک پس کاغذ بنزینی رو لای برف ها پنهان می کنم. دوباره جزوه ها و کتاب ها رو در کیف می‌گذارم و راه می‌افتم. افتم هدف، گاز می دهم. هوا میله به تاریکی دارد و روز روبه غروب است یا خدا، یا خدا، انگار خواب میبینم از دور چراغهای روشن و خاموش میشوند خداوند کمکم کرد جایی که چراغی روشن باشد آنجا آبادی است جان تازه میگیرم و با اشتیاق به سمت چراغها میرانم هرچه پیش میروم به نشانه های زندگی نزدیکتر میشونم کم کم دیوارها و بام خانه ها گنبد و گلدسته های مسجد جلال آباد رو میبینم حالا دیگر خودم میدانم که باید بپیچم دست چپ از صف درختان سنوبر که بگذارم حاشیه شرقی طویله است بالاخره میرسم ترمز میکنم پیاده میشوم جک موتور روی برف تعادل ندارد یک بر میافتد روی برف، من هم مشغول باز کردن حفاظ بارهایم میشونم. از شادی در پوستم نمی گنجم که ناگهان باز هم زوزه ای می شندم. همه امیدم به زندگی رنگ می بازد. چه راه عجیبی یک نفس می, می رم, یک نفس زنده می شدم. اکنون در یک جهان سفید منجمد، بلا تکلیف ایستادم دم بدم زوزه ها نزدیک تر می شود از آن طرف هم سر و صدای ها و گساله های وحشت زده بلند می شود به سمت زوزه گوشتیز می کنم زوزه زوزه تهدید نیست احتمالا زوزه درد و رنج است به نظرم ماده گرگ باردار است یا شاید از فرط دندان درد زوزه می میکشد در عالم خیال دنبال مسکن میگردم هیچ نوع مسکنی در کیسه ندارم تازه مگر گرگ دهانش را برای معاینه من باز میکند تصمیم میگیرم کیسه را بردارم و دوان دوان خودم را به طویله برسانم اما کار خطرناکی است همچنان مردد میمانم سر و صدا ها می خوابد. همه جا ساکت است. چنانکه که صدای نشستن دانه های برف را می شنبم. بعد هم صدای پای. حس میکنم کنم صدای پای گرگ است. لنگ میزند. زند. چیکار کنم. وحشت زدم. بی اختیار کنار موتورسیکلت روی برف ها می نشینم. حالا حتی جرأت نفس کشیدن ندارم. شاید همینجا پشت سرم ایستاده. ای خدا دیگر خورشید رو نمی بینم. درسش که تمام شود وقتی ببیند از من خبری نیست با مرد دیگری ازدواج می کند و در این جهان از من جز خاطرهای در حافظه گاف ها و گوسال ها چیزی به جا نمی فکر میکنم کنم ماده گرگ خوردن مرا از کجا شروع می کند معمولا ابتدا گلوی شکار را گاز می گیرند آنقدر که شریان های تنفسی قطع شود بعد لاشم را با دندان می کشد و با خود میبرد برد کم کم گرک های دیگر هم میرسند و به اتفاق مشغول خوردن من می شود. باید این فکرها را از خودم دور کنم آنها شامهی قوی دارند ترس تعمهشان را به خوبی استشمام میکند اما مگر انسان میتواند به موضوعی که نمیخواهد یا نباید فکر کند سعی میکنم در این آخرین لحظات به خدا و خورشید فکر کنم. اما فرصتی نمانده حس می کنم گرگ تنش را به تنم میساید احساس خوب توعم با وحشتی است من هم آرام آرام سر میچرخانم و زیر چشمی او را برانداز میکنم میخواهم از حالت دمش پی به روحیش ببرم کمی خیالم راحت میشود از طرفی حدسم درست بود پای چپش خونی است تکه تکه وسایلم را از کیسه در میآورم از فرط سرما دستهایم به سختی حرکت میکنند کش می توی آغول خودم را گرم می کردم و برمیگشتم. اما این کار برای گاوها و گساله ها خطر دارد این همه محتویات کیسه را روی برف می ریزم اول با پنبه و محلول ضد افونی دور زخم گر را تمیز می کنم باد سمجی می وزد و بخار دهان گر را روی صورتم می پاشد ترس من کم شده اما همچنان می لرزم. باید کار را زودتر تمام کنم. پماد آنتیبیوتیک یخ زده و به سختی خارج می شود. به هر شکل پای گر را بان پیچی می کنم. کار من تمام شده. دلم می خواست به او هم بگویم بیشتر از این کاری از دستم بر نمی آید. لطفاً برو. اما او نمی رود. کنارم ایستاده زل زده به رو به رو. باید هر طور شده گرگ را از طویله گاف ها دور کنم راه حلی به نظرم میرسد لابلای جزوه ها و کتاب هایم کتاب جیبی سبک وزنی دارم صفحاتش کاهیست لایم لایت چارلی چاپلین آن را پیدا میکنم و با تمام توان پرت میکنم به طرف صف درختان سنوبر می میگیرد و گرگ با پای زخمی به سرعت به سمت کتاب جیبی می دود. من هم کیسه رو برمیدارم و به طرف طویله می دوم. همین میرسم دست پاچه کلون در طویله را برمیدارم که داخل شوم اما قفلگیر می شودم. همین که در باز می شود گرگ را زوز کشان پشت سرم می بینم. در چشم به هم زدنی غغا می شود. گاوهای ترسیده فریاد کشان به سمت دشت حمله میبرند تا فرار کنند من فریاد میکنم گاوها گوساله ها نترسید نترسید این گرگ خودش زخمی است به شما صدمه ای نمی اما صدایم به جایی نمی رسد گاوها و گوساله ها رم کردند و سراسیمه میگریزند من هم تعادلم به هم میخورد زیر دست و پای گاوها و گساله ها میفتم آنها حراسان از روی من میگذرند و عاقبت من میمیرم کمی بعد همه جا ساکت میشود ولی همچنان برف میبارد برف میبارد و روی مرا آرام آرام میپوشاند.